قبل از اینکه بخوایم در مورد تکنیک های ای مثل پیسینگ لیدینگ صحبت کنیم لازم باشه که بریم سراغ یه سری مباحث پایه که توی NLP هم مبحثی مثل میررینگ رو احتمالا شنیده باشید یا توی مطالب قبلی سایت اون رو در واقع دیده باشید به هر شکل از این پایه شروع میکنیم و بعد در درس درس‌های بعدی می‌رسیم به پیسن لیدینگ اما به حاشیه این دو درس خیلی با هم مرتبط هستند تکنیک میررینگ و اصل میررینگ برمی‌گرده به این موضوع از ساختار وجود انسان، ساختار ذهن انسان که اصولا ما انسان‌ها آدم‌هایی که به ما شبیه‌تر هستند رو بیشتر باشون ارتباط برقرار می‌کنیم، بیشتر باشون کانکت می‌شیم، راحت‌تر باشون دوست می‌شیم و این شباهت میتونه به شکل‌های مختلفی وجود داشته باشه یعنی ممکنه یک زمانی این شباهت برگره به اینکه شما اصلا وارد شهر غریبه‌ای میشید خارج از کشور اسید بعد یهو یه نفر به زبون شما داره حرف می‌زنه یه نفر مثل شما لباس پوشیده یه نفر علایق رو داره و اگه خیلی خوب دقت کنید اصولا دوستی‌هایی که شکل می‌گیره هم هم فرکانس شدن هایی که شکل می‌گیره هم با همین روال هست یعنی شما حس می کنید که یک نفر به شما نزدیک یک نفر شبیه و دقت کنید همه اینها خیلی سریع و ناخداگاه آنالیز و انجام می شه این نیست که شما لزومن بشینید با خودتون بگید خب من لباسم شبیه این آدمه مثل این آدم را میرم رم مثل این آدمه و بنابراین جا داره کنیم روی این اصل که هر چند شما توی NLP هم توی علم پروگرامینگ در مورد mirroring و building رپورت میشنوید اینکه شما تناسب و نزدیکی با یه فرد ایجاد کنید و اینکه به این شکل میتونید یه جورایی هیپنوتیزمش کنید میتونید نزدیکش بشید اما مثال‌های مختلفی رو میشه زد که آگاه شید اول سم هیپنوتیزم و ان خیلی به هم نزدیکن یعنی اینطور نیست که غریبه باشن این علوم و توصیه میکنم کنم حتماً نگاهی به علم NLP مقالاتی که توی سایت داریم به توی کلاس دایمی هیبنوتیزم هم خیلی ما در مورد NLP صحبت میکنیم حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم و جز مواعثمون هست در واقع شکل. احتمالا دیده باشید که یه زمانهی شما خمیازه میکشید و واقعا خوابتون میاد و بعد این خمیازه ها منتقل میشه به نفر دیگه به نفر اطرافتون دوربرتون یا هر چیزی. و در واقع توی سطح ناخودآگاه حلت این هم اینه که حالا توی اون جایی که نشستید یا توی اون جا میکستید با اون فرد یه رپورت اولی ایجاد کرد یعنی یه نزدیکی بوده بین شما و اون فرد که بعد حالا شما خمیازه می‌کشید، اون آدم هم خمیازه میکشه و میخوام بتونین رو بگم که به عنوان یک تکنیک هیبنوتیزمی کاملا میتونید به این موضوع نگاه کنید که هر زمان با یک فرد رپورت و نزدیکی ایجاد کنید، یعنی سمیمیت، تشابه ایجاد کنید حالا چه توی نشستن نشستنتون اگه پشت تلفن دارید با کسی حرف زنید با کلماتی که استفاده می کنید سرعت حرف زدن لحن صدا هر قطع که شما نزدیکتر بشید شبیه تر بشید به دیگران اتفاقی که میفته اینه که در گام های بعدی میتونید روی فرد اثر بذارید یعنی وقتی که کاملاً شبیه شدید حالا شما خواهید دید که یه ها پاتون رو میذارید روی یکی پاتون طرف مقابل هم همین کار رو پا میشید طرف مقابل هم ها انگار اصلا ناخودآگاه میخواد پاشه حالا ممکنه لوزمند پا نشه ولی یه هماهنگی به خوبی میشه دید که وجود داره توی تعاملات قبلیتون هم بوده اگه دقت کرده باشید البته و میخوام بهتون بگم این تکنیک بسیار قویه اگه میخواید با کسی نزدیک بشید اگه می‌خواید از کسی در درخواستی داشته در اون درخواست رد نشه و هزار موضوع و شاخه دیگه توی مصاحبه کاری ممکنه باشه و هزار زمینه دیگه حتما از رپورت استفاده کنید حتما بهش توجه کنید حالا توی گام بعدی ما خواهیم گفت که پیسینگ لیدینگ گام بعدی بعد از اینکه شبیه یک فرد شدید میتونید از پیسینگ لیدینگ استفاده کنید در این بعدا صحبت خواهیم کرد از شما دعوت میکنم که این تمرین رو از همین لحظه داشته باشید یعنی توی محیطی که هستید توی زندگی روزمره دقت کنید که چطور میتونید شبیه دیگران بشید ممکنه توی نگرش لازم باشه تغییری انجام بشه ممکنه توی حرفایی که به دیگران میزنید یا نمیزنید توی نوع نشستنتون نوع راه رفتنتون زبان بدنتون مایکروفیشال اکسپریشن یعنی حالت های چهره ریزی که بعضا ممکنه از خودتون. در واقع داشته باشید یه جوری توی چهرهتون همه اینها رو اگه خیلی خوب مدیریت کنید و دقت کنید بهش خواهید دید که اثرگذاریتون روی دیگران و در واقع حرف شنوی دیگران از شما خیلی بالاتر میره خیلی بهتر میتونید کانک شید و با این مقدمه میتونید کم کم برید سراغ درس بعدی که خواهیم داد و تکنیک های پیشرفته تری رو اجرا کنید